15 پیوند علم و امپراتوری فاصله خورشید از زمین چقدر است این سؤالی است که بسیاری از ستاره‌شناسان اولیه عصر نوین را شیفته خود کرد به ویژه بعد از آنکه کوپرنیک اعلام کرد که این خورشید است و نه زمین که در مرکز جهان قرار دارد شماری از ستار شناسان و ریاضیدانان تلاش کردند تا این فاصله را محاسبه کنند اما روشهای آنها پاسخهای بسیار متفاوتی به دست داد بلاخره در عواسط قرن هجدهم یک روش قابل اعتماد پیشنهاد شد. هر چند سال یک بار سیاره زهره مستقیما از میان خورشید و زمین عبور می کند. بسته به اینکه از چه فاصله ای در روی زمین به خورشید نگاه کنیم مدت زمان این گذار متغیر خواهد بود و این به دلیل تفاوت های ظریف در زاویه دیده بیننده است. اگر یک عبور واحد توسط چندین مشاهدهگر از قاره های متفاوت صورت می‌گرفت، تنها به یک محاسبه مثلثاتی ساده نیاز بود تا بتوان فاصله دقیق میان زمین و خورشید را اندازه گرفت. پیش پیشبینی کردند که عبورهای بعدی سیاره زهره در سالهای 1761 و 1769 خواهد بود. بنابراین، کاشفانی از اروپا به چهار گوشه جهان فرستاده شدند تا بتوانند این عبور را از ففاصل متعدد مشاهده کنند. در سال 1761، دانشمندان این عبور را از سیبری، آمریکای شمالی، ماداگاسکار و آفریقای جنوبی مشاهده کردند. وقتی عبور سال 1769 نزدیک میشد شد، جامعه علمی اروپا یک تلاش همه جانبه خرج داد و محققینی را به دوردست ها تا شمال کانادا و کالیفرنیا که در آن زمان سرزمین وحشی بود اعزام کرد. جامعه سلطنتی لندن برای ارتقاء دانش طبیعی به این نتیجه رسید که این کافی نیست. برای رسیدن به دقیق ترین نتایج لازم بود تا یک ستاره شناس حتی به جنوب غربی اقیانوس آرام فرستاده شود. جامعه سلطنتی تصمیم گرفت یک ستاره شناس برجسته به نام چارلز گرین را به تاهیتی اعزام کند و از پول و تدارکات هم دریغ نکرد. اما از آنجایی که این سفر اکتشافی گران تمام شد، معقول به نظر نمی رسید که آن سفر را صرفاً به یک مشاهده ستاره شناسی محدود کنند. از این رو گرین با گروهی مراکب از هشت نفر از دانشمندان های مختلف علمی به سرپرستی گیاهشناسان جوزف بانکس و دانیل سولاندر همراه شد. هنرمندانی هم با این گروه عازم شدند تا از سرزمینها، گیاهان، حیوانات و انسانهای جدیدی که بدون شک ملاقات می کردند نقاشی کنند. این گروه اکتشافی تحت رهبری کاپیتان جیمز کوک، یک ملوان مجرب و یک جغرافیدان و قومنگار مجهز به پیشرفت ترین تجهیزات علمی بود که بانکس و جامعه سلطنتی میتوانست تهیه کند. هیئت اکتشافی انگلستان را در سال 1768 ترک کرد. عبور سیاره زهره را در تاهیتی در 1769 مشاهده کرد. چندین جزیره اقیانوس آرام را شناسایی کرد، از استرالیا و نیوزیلند دیدن کرد و در سال 1771 به انگلستان بازگشت. این هیئت دستاوردهای اطلاعاتی عظیمی در حیطه‌های مختلف ستار شناسی، جغرافیا، هواشناسی، شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و مردم شناسی با خود به همراه آورد که کمک عظیمی به شماری از عرصه های علمی کردند و با روایت های از اقیانوس آرام جنوبی تخیلات اروپاییان را بارور کردند و الهام بخش نصهای آینده طبیعتگرایان و ستار شدند. یکی از عرصه هایی که از سفر اکتشافی کوک بحرمند شد، رشته پزشکی بود. در آن زمان، کشتی هایی که بادبان می و به سواحل دور رهسپار میشدند می شدند، می که بیش از نیمی از خدمهشان در طی سفر خواهند مرد. قاتل، بومی های رزمناوهای های دشمن و یا احساس قربت نبود، بلکه یک ناخوشی مرموز به نام اسکوربورد بود، که مردانی که به آن مبتلا می شدند و افسرده می شدند و لحظه ها و سایر بافت های نرم بدنشان خون ریزی می کرد. با پیشرفت این بیماری دندان هایشان می افتاد، زخم های باز روی بدنشان ایجاد می شد، تب می دچار دو دوچار یرقان می شدند و کنترل خود را بر اعضای بدن از دست می دادند. تخمین زده می شود که بین قرون 16 و 18 اسکوربورد جان حدود 2 میلیون دریانورد را گرفت. کسی دلیل آن را نمیدانست و هیچ علاجی کارساز نبود. دریانوردان دسته دسته میمردند. در سال 1747 وقتی که یک پزشک انگلیسی به اسم جیمز لیند رهبری آزمایش کنترل شده ای را روی دریانوردان مبتلا به دست گرفت و رق برگشت. او آنها را به چندین گروه تقسیم کرد و هر گروه را تحت مداوای مختلفی قرار داد. یکی از گروه‌های آزمایشی ملزم به خوردن مراکبات شد که مداوای معمول در میان عامه برای اسکوربوت است. بیماران این گروه بلافاصله سلامتی خود را باز یافتند. لیند نمیدانست چه چیزی در مراکبات وجود دارد که در بدن دریانوردان نیست، اما ما می‌دانیم که آن چیز ویتامین سه است. غذای معمول برای دریانوردان در آن زمان فاقد این ماده غذایی حیاتی بود. غذای دریانوردان در سفرهای طولانی معمولا شامل بیسکویت و گوشت گاو بود و تقریباً هیچ گونه سبزیجات و میوه ای مصرف نمی کردند. نیروی دریایی سلطنتی نسبت به آزمایشات لیند متقاعد نشد، اما کوک متقاعد شد. او مسمم شد تا صحت ادعای این پزشک را ثابت کند. او قایق خود را پر از کلمه ترش کرد و به دریانوردانش دستور داد وقتی که به ساحل می رسند تا جایی که می توانند میوه های تازه و سبزیجات مصرف کنند. اسکوربورد حتی یک قربانی هم از کوک نگرفت. در دهه های بعدی تمام دریانوردان دنیا رژیم قضایی دریایی کوک را در پیش گرفتند و جان دریانوردان و مسافران بیشماری حفظ شد. اما سفر اکتشافی کوک نتیجه بسیار ناخوشایندی هم داشت. کوک فقط یک دریانورد و جغرافی‌دان مجرب نبود، بلکه افسر نیروی دریایی هم بود. جامعه سلطنتی بخش عظیمی از مخارج سفر اکتشافی را به گردن گرفته بود، اما خود کشتی را نیروی دریایی سلطنتی فراهم کرده بود. نیروی دریایی همچنین 85 ملوان و تفنگدار مسلح مجهز به توپخانه و تفنگ و باروت و دیگر سلاح‌ها را در اختیار این هیئت اکتشافی گذاشته بود. بسیاری از اطلاعات جمع‌آوری شده این هیئت خصوصاً در حوزه‌های شناسی، جغرافیا، هواشناسی و مردمشناسی آشکارا ارزش سیاسی و نظامی بودند. کشف مؤثر مداوای اسکوربورد کمک بزرگی به بریتانیا برای کنترل بر اقیانوس‌های جهان و توانایش برای فرستادن ارتشهایی به آن سوی جهان به شمار می‌آمد. کوک بسیاری از جزایر و سرزمین‌های کشف شده از جمله استرالیا را به متعلقات بریتانیا بدل کرد. سفر اکتشافی کوک پایه‌ای شد برای اشغال جنوب غربی اقیانوس آرام، توسط بریتانیا، اشغال استرالیا، تاسمانیا و نیوزیلند، اسکان میلیون‌ها اروپایی در های جدید و نابودی فرهنگ‌ها و اکثر جمعیت‌های بومی. تا یک قرن بعد از سفر اکتشافی کوک، حاصلخیز ترین سرزمینهای استرالیا و نیوزیلند توسط مهاجرین اروپایی از ساکنین قبلی خود رو بوده شد. 90 درصد از جمعیت بومی از بین رفت و بازماندگان تحت حاکمیت یک رژیم خشن نجات پرست قرار گرفتند. سفر اکتشافی کوک برای بومیان استرالیا و مواریهای نیوزیلند سرآغاز فاجعه‌ای بود که هرگز از آن رهایی نیافتند. بومیان تاسمانی سرنوشت باز هم شونتری پیدا کردند. آنها بعد از یک بقای ده هزار ساله در یک انزوای پرشکوه در تایی یک قرن بعد از سفر کوک به طور کامل و تا آخرین نفر به همراه زن و فرزند نابود شدند. مهاجرین اروپایی اول حاصل خیزترین قسمتهای جزیره را از آنها گرفتند و بعد حتی به باقی مانده سرزمین های وحشی هم تمع ورزیدند و به شکار و کشتار منظم آنها پرداختند. اندک بازماندگان در اردوگاه های مسیحی محصور شدند و مبلغان خوشدیت اما نلزومن بلند نظر تلاش کردند تا شیوه زندگی نوین را به آنها تلقین کنند. تاسمانی‌ها را مجبور به آموزش‌های خواندن و نوشتن و تعالیم مسیحیت و مهارت‌های سودمند مثل دوختن لباس و کشاورزی کردند اما آنها از آموختن سر باز زدند و بیش از پیش افسرده شدند و همچنین از تولید مثل خودداری کردند و میل خود به زندگی را از دست دادند تا نهایتا تنها راه فرار از دنیای نوین علم و پیشرفت را اختیار کردند و نابود شدند افسوس که علم و پیشرفت این بومیان را بعد از مرگشان هم به حال خود نگذاشت. پیکرهای آخرین ها تحت نام علم در تصرف مردمشناسان و موزهداران قرار گرفت. آنها کافی شدند، وزن شدند، اندازه گیری شدند و در مقالات آموزشی تجزیه و تحلیل شدند. جمجمه و اسکلتشان در موزه ها در میان کلکسیون مردمشناسی به نمایش درآمد. بلاخره در سال 1976 موزه تاسمانی راضی شد تا اسکلت تروگانینی آخرین بومی تاسمانی که در صد سال قبل از آن مرده بود را به خاک بسپارد. کالج سلطنتی جراحان انگلیس نمونه هایی از پوست و موی او را تا سال 2002 نگه داشت. آیا سفر کوک یک سفر اکتشاف علمی بود که توسط نیروهای نظامی حمایت میشد یا اینکه یک سفر اکتشافی نظامی بود که مشتی دانشمند را هم همراه داشت این سوال شبیه به این پرسش است که آیا باک بنزین شما نیمه خالی است یا نیمه پر در حقیقت هر دو انقلاب علمی و امپریالیسم نوین از هم جدایی ناپذیرند افرادی نظیر کاپیتان جیمز کوک و گیاهشناس شناس جوزف بانکس به سختی قادر به تمیز دادن علم از امپراتوری بودند. تروگانینی سیاه بخت هم فاقد این تشخیص بود. چرا اروپا این واقعیت که مردم جزیره پهناوری در اقیانوس اطلس شمالی جزیره پهناوری را در جنوب استرالیا فت کردند، یکی از حوادث عجیب تاریخ است. تا چندی قبل از سفر اکتشافی کوک، جزایر بریتانیا و به طور کلی اروپای غربی صرفا مناطق پرت و دورافتاده در دنیای مدیترانه بودند. واقعی مهمی در این مناطق روی نمیداد. حتی امپراتوری روم تنها امپراتوری پیشانوین مهم اروپا بخش اعظم ثروت خود را از آفریقای شمالی، بالکان و ولایاتی در خاور میانه بدست آورد. ایالات روم در اروپای غربی صرفاً سرزمین های وحشی و فقیری بودند که به جز معدن و برده سهم دیگری از این ثروت نصیبشان نمیشد اروپای شمالی چنان متروک و وحشی بود که حتی ارزش تسخیر هم نداشت. تنها در پایان قرن پانزدهم بود که اروپا به محیط مناسبی برای پیشرفت های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدل شد. اروپای غربی بین سالهای 1500 و 1750 میلادی قدرت گرفت و به ارباب دنیای بیرونی یعنی دقاره آمریکایی و اقیانوسها بدل شد. اما اروپا حتی آن زمان هم در مقابل امپراتوری های مقتدر آسیا رقیبی به شمار نمی آمد. دلیل اینکه اروپایی ها امریکا را فرد کردند و بر دریاها مسلط شدند، این بود که قدرت آسیایی چنین علاقی نداشتند. دوران اولیه نوین دورانی طلایی برای امپراتوری عثمانی در مدیترانه، امپراتوری صفوی در پارس، امپراتوری مغول در هند و سلسله‌های مینگ و چینگ در چین بود. آنها قلمروهای خود را به طور چشمگیری گسترش می‌دادند و از افزایش بی سابقه جمعیت و رشد اقتصادی خود خوشنود بودند. در سال 1775 آسیا بر 80 درصد از اقتصاد جهان مسلط بود. اقتصادهای هند و چین روی هم پاسخگوی دو سوم از کل تولید اقتصادی جهان بود. اروپا در مقایسه با اینها یک کوتوله اقتصادی بود. زمانی که اروپاییان قدرت آسیایی را پس از یک رشته جنگ های پیاپی به مزلت نشاندند و بر بخش‌های وسیعی از آسیا چیره شدند، یعنی بین سالهای 1750 و 1850 مرکز جهانی قدرت به اروپا منتقل شد. اروپاییان از سال 1900 قویین بر اقتصاد جهان و اکثر سرزمین های آن کنترل داشتند، در 1950 اروپای غربی همراه با آمریکا بیش از نیمی از تولید جهان را داشتند در حالی که سهم چین به پنج درصد تنزل کرده بود تحت حمایت‌های اروپاییان یک نظم جهانی و یک فرهنگ جهانی جدید شکل گرفت امروزه همه انسان‌ها در ابعاد بسیار گسترده‌تری از آنچه که حاضر به اعتراف به با آن باشند در لباس نحوه تفکر و ذوق و سلیقه اروپایی هستند آنها شاید در حرف شدیداً ضد اروپایی باشند اما تقریبا همه مردم دنیا به سیاست، پزشکی، جنگ و اقتصاد با چشمان اروپایی مینگرند و به آن موسیقی گوش می کنند که به سبک و زبان اروپایی تصنیف شده. حتی جوانه های اقتصاد شکوفای کنونی چین که به زودی برتری جهانی خود را باز خواهد یافت بر پایه الگوی تولیدی و مالی اروپایی بنا شده. چطور مردم این خطه بسیار سرد اوراسیا توانستند از یک گوشه دورافتاده دنیا سر و تمام جهان را تسخیر کنند؟ اغلب به نقش برجسته دانشمندان اروپایی در این چرخش اشاره می شود. این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که از سال 1850 میلادی به بعد تسلط اروپا در ابعاد گسترده بر پایه یک مجموعه نظامی، صنعتی، علمی و قدرت جادویی تکنولوژی قرار داشت. تمام امپراتوری‌های موفق نوین به این امید به سرمایه گذاری در تحقیقات علمی پرداختند که به نوع آوری های تکنولوژیک مجهز شوند و بسیاری از دانشمندان اغلب اوقات خود را در خدمت اربابان امپراتوری خود وقف پروژههای تسلیحاتی، پزشکی و ماشین‌آلات کردند. مسئله رایج در میان سربازان اروپایی در مواجهه با دشمنان آفریقایی میگفت هر اتفاق بیفتد دست آخر این مایم ما که مسلسل ما داریم نه آنها تکنولوژی غیر نظامی هم کمتر از این نبود. غذای کنسرف شکم سربازان را سیر می کرد، راه و کشتی بخار سربازان و تجهیزاتشان را انتقال می داد و انبار جدید دارو، سربازان، ملوانان و لوکوموتیورانان را مداوا می کرد. این پیشرفت های تدارکاتی نقش برجسته تری از مسلسلها در تسخیر آفریقا توسط اروپاییان داشت. اما وضعیت قبل از 1850 اینطور نبود. مجموعه نظامی صنعتی علمی هنوز در نطفه بود. دستاوردهای تکنولوژیک انقلاب علمی هنوز ناقص بودند. فاصله تکنولوژیک میان نیروهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی کم بود. جیمز کوک در سال 1770 قطعا تکنولوژی بهتری از بومیهای استرالیایی داشت، اما چینیها و ها هم چنین امتیازاتی را داشتند. پس چرا استرالیا توسط جیمز کوک کشف و مستعمره شد و نه توسط کاپیتان وانجنکس یا کاپیتان حسین پاشا؟ مهمترین که اگر در 1770 اروپاییان برتری تکنولوژیک خاصی بر مسلمانان، هندیها و چینیها نداشتند، پس چطور توانستند در قرون بعدی چنین ای را میان خودشان و بقیه دنیا ایجاد کنند؟ چرا مجموعه نظامی صنعتی علمی در اروپا شکوفا شد و نه در هند وقتی بریتانیا به جلو خیز برداشت چرا فرانسه آلمان و آمریکا هم به سرعت پیروی کردند در حالی که چین عقب ماند وقتی فاصله میان ملت‌های صنعتی و غیرصنعتی به یک عامل بارز اقتصادی و سیاسی بدل شد، چرا روسیه، ایتالیا و اتریش موفق به پر کردن این فاصله شدند، اما ایران و مصر و امپراتوری و عثمانی موفق به این کار نشدند؟ در هر حال، تکنولوژی اولین موج صنعتی نسبتا ساده بود. آیا برای چین و عثمانی دشوار بود که ماشین بخار بسازند، مسلسل تولید کنند و راه احداث کنند؟ اولین خط آهن تجاری جهانی برای تجارت در 1830 در بریتانیا افتتاح شد. در 1850 سرزمین های پوشیده بود از چهل هزار کیلومتر شبکه راه اما در تمام آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تنها چهار هزار کیلومتر خط آهن وجود داشت. در 1880 غرب به خود میبالید که بیش از 350 هزار کیلومتر خط آهن دارد در حالی که در سایر نقاط دنیا تنها 35 هزار کیلومتر راه آهن وجود داشت و بیشتر آنها را هم انگلیسی ها در هند کشیده بودند اولین خط آهن در چین در 1876 احداث شد که طولش 5 کیلومتر بود و توسط اروپایی ها ساخته شد اما دولت چین سال بعد آن را خراب کرد در 1880 امپراتوری چین هیچ خط آهنی احداث نکرد. اولین خط آهن در ایران در سال 1888 تأسیس شد که تهران را به مکان مقدسی در حدود 10 کیلومتر در جنوب پایتخت وصل کرد. این تأسیسات توسط یک شرکت بلژیکی ساخته و راهاندازی شد. در 1950، کل شبکه آهن ایران، کشوری که هفت برابر بزرگتر از بریتانیا بود، به 2500 کیلومتر می رسید. چینی ها و ایرانی ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند که می توانست آزادانه، کپی یا خریداری شود، آنچه که فاقدش بودند، ارزشها، استوره ها، دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی اجتماعی بود که برای قرب نیاز به قرنها وقت بود تا آنها را ایجاد کند و تسبیت کند و نمی آن را به سرعت کپی کرد و در سراسر کشور گسترش داد. فرانسه و آمریکا به سرعت از بریتانیا پیروی کردند زیرا در آن زمان در مهمترین استوره ها و ساختارهای اجتماعی بریتانیایی شریک بودند. چینی ها و ایرانی ها قادر به جبران سریع این عقب افتادگی ها نبودند زیرا به گونه متفاوتی فکر میکردند و جوامع خود را به طریق دیگری سازماندهی می کردند. این توضیح پرتو جدیدی بر دوره 1500 و 1850 می اندازد. اروپا در آن دوره از نظر تکنولوژیک، سیاسی، نظامی یا اقتصادی برتری آشکاری نسبت به آسیا نداشت. اما این قاره نیروی بلقوه بی همتایی به وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود 1850 نمایان شد. برابری ظاهری میان اروپا، چین و جهان اسلام در 1750 یک توهم بود. تصور کنید که دو ساختمان ساز هر کدام در حال ساختن یک برج بسیار بلند هستند. یکی از سازنده ها از چوب و خشت و گل و دیگری از فولاد و بتون استفاده می کند. در آغاز به نظر میرسد که تفاوت چندانی میان این دو روش وجود نداشته باشد زیرا هر دو برج با یک سرعت بالا میروند و به ارتفاع یکسانی میرسند. اما پس از یک مرحله بحرانی برجی که از چوب و خشت است از پس سنگینی بر نمیآید و در هم فرو می‌ریزد در حالی که برجی که از فولاد و بتن است تا جایی که چشم میتواند ببیند طبقه به طبقه قد کشد چه توانایی بلغوه ای اروپا را در دوره پیشانوین تکامل داد که آن را قادر ساخت تا در اواخر اصر نوین بر جهان مسلط شود؟ دو پاسخ مکمل برای این سال وجود دارد، علم نوین و کاپیتالیسم. اروپایان حتی قبل از اینکه از هر امتیاز برجسته تکنولوژیک بهرمند شوند عادت داشتند در یک چارچوب علمی و کاپیتالیستی فکر رفتار کنند. وقتی شکوفایی تکنولوژی آغاز شد، آنها بهتر از هر کس دیگری توانستند بر آن مهار بزنند. پس تصادفی نیست که علم و کاپیتالیزم مهمترین میراثی را شکل داده باشد که امپریالیسم اروپایی از خود برای جهان پسا اروپایی قرن بیستم و 21 بیست کم به جا گذاشت. اکنون دیگر اروپا و اروپاییان بر جهان حکومت نمی کنند، اما علم و سرمایه قدرتمندتر تر از گذشته رشد می کنند. های کاپیتالیسم در فصل بعدی بررسی می شود. این فصل به داستان عاشقانه امپریالیسم اروپا و علم نوین اختصاص دارد. ذهنیت علم جدید به یاری امپراتوری اروپایی در اروپا شکوفا شد. این علم دین بسیاری به های کهن علمی مثل علم کلاسیک یونان چین هند و اسلام دارد اما ویژگی خاص آن در همین دوره نوین پا به پای گسترش های اسپانیا پرتغال بریتانیا فرانسه روسیه و هلند شکل گرفت در همین دوره پیشانوین، چینی ها، هندیها، مسلمان ها، آمریکایان بومی و پلیزی ها کماکان به انقلاب علمی یاری میرساندند. بینش اقتصاددانان مسلمان که توسط آدام اسمیت و کارل مارکس بررسی شدند، معالجات ابداعی حکیمان سرخپوست آمریکایی که راه خود را به متون پزشکی انگلیسی باز کردند و اطلاعات اقتباس شده از آگاهان پولینزی موجب انقلاب در مردم شناسی غربی شد. اما کسانی که تا نیمه قرن بیستم، این حجم عظیم کشفیات علمی را گردآوری کردند و رشته های علمی را ایجاد کردند نخبگان حاکم و اندیشمند امپراتوری های جهانی و اروپایی بودند. خاور دور و جهان اسلام مقصایی با همان نبوغ و کنجکاوی اروپایی می اما بین 1500 و 1950 چیزی خلق نکردند که حتی به نزدیکی فیزیک نیوتون یا زیست داروین برسد منظور نیست که اروپایی ها یک ژن خاص علمی دارند یا اینکه برای همیشه بر مطالعات فیزیک و زیست شناسی خواهند داشت درست همانطور که اسلام در انحصار اعراب بود و بعد از مدتی به دست ترکها و ایرانیان افتاد علم نوین هم به صورت یک تخصص اروپایی شروع شد اما امروزه به فعالیتی چند قومی بدل شده چه چیزی باعث پیوند تاریخی میان علم جدید و امپریالیسم اروپایی شد تکنولوژی در قرون نوزدهم و بیستم یک عامل مهم بود اما در ابتدای اصر نوین اهمیت کمتری داشت عامل تعیین کننده این بود که گیاه شناس گیاهجو و افسر نیروی دریایی مستمر جو در راستای فکری مشترک بودند. دانشمند و اشغالگر با اعتراف به نادانی شروع کردند هر دو گفتند نمیدانم در دنیا چه خبر است. هر دو خود را ملزم به انجام اکتشافات جدید کردند و هر دو امیدوار بودند که دانش جدیدشان آنها را به اربابان جهان بدل کند امپریالیسم اروپایی کاملا متفاوت است از سایر پروژه‌های امپراتوری در طول تاریخ است. امپراتوری جویان پیشین فرض را بر این می‌گذاشتند که جهان را میشناسند. در فتوحات به دست آمده فقط جهان‌بینی خودشان را به کار می‌گرفتند و رواج می‌دادند. برای مثال عرب‌ها مصر و اسپانیا و هند را برای پیبردن به چیزی که نمی‌دانستند تسخیر نکردند. رومیان مقلها و آستکها سرزمینهای جدید را هریسانه به دنبال قدرت و ثروت تسخیر کردند نه برای علم و آگاهی اما امپریالیست‌های اروپایی بالعکس پا به سواحل دوردست گذاشتند به امید اینکه علاوه بر سرزمینهای جدید به دانش جدید هم برسند جیمز کوک اولین کاشفی نبود که چنین طرز فکری داشت. سیاهان اسپانیایی و پرتغالی قرون 15 هم و 16 هم چنین طرز فکری داشتند. شاهزاده هنری دریانورد و واسکو داگاما به کشف سواحل آفریقا اقدام کردند و در میان کنترل جزایر و بنادر آن را در دست گرفتند. کریستوف کلمب آمریکا را کشف کرد و بلافاصله حق حاکمیت شاهان اسپانیا را بر های جدید اعلام کرد. فردیناند ماژالان راه جدیدی را برای پیمودن دنیا یافت و همزمان زمینه قلبه اسپانیا بر فیلیپین را فراهم کرد. فتح دانش و فتح سرزمین‌ها به مرور زمان بیشتر در هم تنیده شدند. در قرون هجدهم و نوزدهم تقریباً تقریبا هر هیئت اکتشافی نظامی مهمی که اروپا را به مقصد سرزمین های دور ترک می کرد، دانشمندانی را به همراه داشت که وظیفهشان نجنگیدن بلکه کشفیات علمی بود. هگامی که ناپل اون در سال 1798 به مصر حمله کرد، 165 محقق همراه خود برد. اینها در کنار چیزهای دیگر علم جدیدی را به اسم مصرشناسی پایگذاری کردند و سهم مهمی در مطالعه دینی، زبانشناسی و گیاهشناسی داشتند. نیروی دریایی سلطنتی در سال 1831 کشتی HMS بیگل را برای نقشهبرداری به سواحل آمریکای جنوبی، جزایر فالکلند و جزایر گالاپاکوس فرستاد. نیروی دریایی به این اطلاعات نیاز داشت تا بهتر بتواند خود را برای بروز جنگ آماده کند. کاپیتان کشتی که یک دانشمند غیرهرفی بود تصمیم گرفت تا یک زمینشناس را به گروه اکتشافی اضافه کند تا به بررسی ساختارهای زمینشناسی که در طول ها برخورد می کردند بپردازد. پس از آنکه چندین زمینشناس حرفه‌ای دعوت او را رد کردند، این کار را به یک فارق و تحصیل 22 ساله دانشگاه کمبریج به نام چارلز داروین پیشنهاد کرد. داروین تحصیل کرده بود تا یک کشیش کلیسایی انگلیک شود، اما بیشتر به زمینشناسی و علوم طبیعی علاقه بود. او این فرصت را قاپید و بقیه ماجره به تاریخ بیوست، کاپیتان در طی سفر وقت خود را صرف تهیه نقشه های نظامی می‌کرد و داروین هم به جمعوری اطلاعات تجربی و تنظیم نظریاتی می پرداخت که در آینده به نظریه تکامل شناخته شد. در 20 ژوئیه 1969، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین پا به سطح ماه گذاشتند. این فضاپیماوردان ماه‌ها قبل از سفر اکتشافی آپولو 11 به تمرین در یک بیابان دورافتاده در آمریکای غربی پرداختند که شبیه به کره ماه بود. آن منطقه محل زندگی چندین قبیله سرخپوست آمریکایی بود و داستان یا افسانه‌ای در رابطه با ملاقات میان فضاپیماوردان و یکی از افراد این قبایل وجود دارد. فضانوردان روزی هنگام تمرین با فرد پیری از یک قبیله بومی آمریکایی روبرو شدند که از آنها پرسید در آنجا چه می کنند؟ آنها جواب دادند که در رابطه با یک پروژه سفر اکتشافی تحقیقی هستند و به زودی برای سفر به ماه آزم خواهند شد. پیرمرد با شنیدن این حرف لحظهی سکوت کرد و بعد از فضانوردان خواست که لطفی به او بکنند. پرسیدند چه خواسته ای داری؟ پیرمرد گفت مردم قبیله من معتقدند که ارواح مقدس در ماه زندگی می کنند. آیا شما می توانید پیام مهمی را از طرف مردم من به آنها برسانید فزانوردان پرسیدند چه پیامی پیرمرد چیزی به زبان قبیله خود گفت و از فزانوردان خواست تا آن را بارها تکرار کنند تا درست از بر شوند فزانوردان سوال کردند معنایش چیست پیرمرد گفت نمیتوانم به شما بگویم، رازی است که فقط قبیله ما و ارواح ساکن ماه اجازه دانستن آن را دارند. وقتی فضانواردان به قرارگاه بازگشتند، تگی جستجوهای زیاد فردی را یافتند که زبان آن قبیله را میدانست و از او خواستند آن پیام را ترجمه کند. وقتی آنچه را که از برداشتند تکرار کردند، مترجم با صدای بلند قهقهه زد و وقتی ساکت شد از او خواستند تا معنیش را بگوید. او توضیح داد که معنی ای که با این دقت حفظ کرده اند این است حتی یک کلمه از حرفهایشان را باور نکنید اینها آمده اند زمینهای شما را بدزدند نقشه خالی ذهنیت نوین اکتشاف و تسخیر به خوبی در تحولات نقشه جهان به تصویر درآمده. فرهنگ‌های بسیاری مدت‌های طولانی قبل از عصر جدید نقشه دنیا را ترسیم می‌کردند اما هیچ کدام طبعاً تمام دنیا را نمی‌شناختند هیچ فرهنگ آفروآسیایی چیزی درباره آمریکا و هیچ فرهنگ آمریکایی چیزی راجع به آفروآسیا نمی‌دانست اما مناطق ناشناخته از قلم می افتادند یا با های خیالی و چیزهای عجیب پر می‌شدند در این نقشه ها هیچ فضای خالی وجود نداشت و احساسی آشنا از تمام دنیا را برمیانگیختند. اروپاییان طی قرون 15 و شانزدهم شروع به ترسیم نقشه جهان کردند با درج نقاط خالی بسیار که نشانی بود از تحول ذهنیت علمی و شور و شوق امپراتوری اروپایی. نقاط خالی در نقشه گویای پیشرفت روانشناختی و ایدولوژیک و نشان اعتراف سریح اروپاییان به عدم اطلاع راجع به بخش وسیعی از جهان بود. نقطه عطف زمانی ایجاد شد که کریستوف کولوم در سال 1492 برای یافتن راه جدیدی به طرف آسیای شرقی روانه قرب اسپانیا شد. کولوم هنوز به نقشه های کامل قدیمی جهان اعتماد داشت. او با استفاده از این نقشه محاسبه کرده بود که ژاپن باید حدوداً در فاصله 7 هزار کیلومتری در غرب اسپانیا باشد. اما این فاصله در حقیقت بیش از 20 هزار کیلومتر است و یک قاره ناشناخته کامل شرق آسیا و اسپانیا را از هم جدا می کند. حیعت اکتشافی کولومب در تاریخ 12 اکتبر 1492 در ساعت دو صبح با یک قاره ناشناخته مواجه شد. خوان رودریگز برمخو از تیرک دیدبانی کشتی جزیره جزیرهای را در مقابل خود دید که ما اکنون آن را با هاماس می نامیم. و فریاد زد خشکی خشکی. کلم گمان می کرد که به جزیره کوچکی از سواحل شرق آسیا رسیده. او انسان هایی را که در آنجا یافت هندی نامید زیرا گمان می کرد به هند یا آنچه ما امروز هند شرقی یا مجموعه الجزایر اندونزی می نامیم رسیده. کلم تا آخر عمر در این اشتباه باقی ماند. این تصور که او یک قاره کاملا ناشناخته را کشف کرده، برای او و بسیاری از همنسلانش غیرقابل قابل درک بود. هزاران سال بود که نه فقط بزرگترین متفکرین و محققین، بلکه همچنین کتب مقدس مسون از خطا فقط اروپا، آفریقا و آسیا را می شناختند. آیا ممکن بود همه آنها اشتباه کرده باشند؟ آیا انجیل مقدس می توانسته نیمی از دنیا را ندیده باشد؟ این مثلان بود که آپولو یازده در سال 1969 در مسیرش به طرف ماه به کره این ناشناخته برمیخورد که به دور زمین می گشت و هیچیک از مشاهدات قبلی نتوانسته بودند آن را تشخیص دهند. کلمب در امتناع به اعترافش به نادانی هنوز انسانی قرون وسطایی بود، او اطمینان داشت که همه دنیا را می شناسد و حتی کشف مهمش نتوانست او را به چیز دیگری متقاعد کند. اولین انسان نوین که در سالهای 1499 تا 1504 در چندین سفر اکتشافی به آمریکا شرکت کرد، یک دریانورد ایتالیایی به اسم آمریگو وسپوچی بود، بین سالهای 1502 و 1504 دو متن در توضیح این اکتشافات در اروپا منتشر شد که به وسپوچی نسبت داده میشد. در این متن آمده بود که سرزمین جدیدی که توسط کلم کشف شد، جزایری خارج از سواحل شرق آسیا نیستند، بلکه قاره کاملی است که برای متون مقدس، جغرافیدانان کلاسیک و اروپایی های آن زمان ناشناخته بود. در سال 1507 یک نقشه بردار معتبر به نام مارتین والدسیمولر که با این توضیحات متقاعد شده بود یک نقشه جدید از جهان را منتشر کرد این اولین نقشه‌ای بود که محلی را نشان می‌داد که ناوگان اروپایی عازم مناطق غربی به عنوان یک قاره جدید در آن قدم گذاشته بودند والدسمولر با ترسیم این نقشه ناگزیر شد برای آن اسمی انتخاب کند از آنجا که او به غلط گمان می‌کرد که آمریگو و اسپوچی آن قاره را کشف کرده، نام آن را به افتخار او آمریکا گذاشت. نقشه والدسیمولر بسیار متداول شد و توسط بسیاری از نقش برداران دیگر هم کپی شد و به این ترتیب نامی را که او برای این سرزمین جدید انتخاب کرده بود، رواج یافت. در این واقعیت که یک چهارم جهان و دو قاره از هفت قاره اش نام خود را از یک ایتالیایی گمنام گرفتهاند که تنها دلیل شهرتش این بود که جرأت داشت بگوید ما نمی دانیم، ادالتی نه است که فقط شاعران قادر به توجیه آنند. کشف آمریکا یک واقعه بنیادی در انقلاب علمی بود، این کشف نه تنها به اروپاییان آموخت که مشاهدات زمان حال را بر سنت گذشته ترجیح دهند، بلکه آرزوی تسخیر آمریکا آنها را ملزم کرد تا با سرعتی سرساماور به جستجوی دانش جدید بپردازند. اگر آنها واقعا می‌خواستند بر سرزمین های وسیع جدید سیتره یابند، ناچار بودند انبوه عظیمی از اطلاعات جدید درباره جغرافیا، آب و هوا، گیاهان، جانداران، زبانها، فرهنگها و تاریخ قاره جدید جمع کنند. متون مقدس مسیحی، کتابهای قدیمی جغرافیایی و سنتهای روایتی کهن فایده چندانی نداشتند. از آن به بعد، نه فقط جغرافی دانان اروپایی، بلکه محققین اروپایی در تقریبا همه عرصه‌های دیگر دانش، به ترسیم نقشه های پرداختند که فضاهای خالیشان باید پر میشد. آنها پذیرفتند که نظریاتشان کامل نبوده و چیزهای مهمی وجود داشت که نمیدانستند. نقاط خالی بر روی نقشه مثل آهن روبا اروپاییان را به سوی خود کشید و آنها به سرعت شروع به پر کردن آن کردند. اروپاییان تی قرون پانزدهم و شانزدهم آفریقا را دور زدند، آمریکا را کاویدند، از اقیانوس آرام و اقیانوس هند عبور کردند و شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مستعمرات در تمام دنیا ایجاد کردند. آنها اولین امپراتوری‌های جهانی واقعی را برپا کردند و اولین شبکه تجارت جهانی را تنیدند. حیعت های اکتشافی امپراتوری اروپایی تاریخ جهان را دگرگون کردند. تاریخ از مجموعه از سرگزشت های ها و فرهنگ های دور تاریخ به یک جامعه واحد و یک بارچه بشری بدل شد. این سفرهای کشف و تسخیر اروپایی چنان برای ما آشنا هستند که بر حسب عادت اهمیت خارق‌العاده آنها را نادیده می‌گیریم. رویدادهای نظیر اینها هرگز اتفاق نیفتاده بود. لشکرکشی و تسخیر مناطق دوردست یک اقدام طبیعی نیست. در طول تاریخ، اکثر جوامع بشری چنان درگیر کشمکش های محلی و ستیز با همسایگان خود بودند که هرگز به فکر کشف و تسخیر سرزمین دوردست نمیفتادند. اکثر امپراتوری‌های بزرگ سلطه خود را فقط بر همسایگان مجاور خود اعمال می‌کردند و دستاندازی آنها به سرزمین‌های تر به خاطر گسترش قلمرو همسایگانشان بود. رومیان اتروریا را فتح کردند تا از روم دفاع کنند. سپس در دره پورا را اشغال کردند تا از اتروریا دفاع کنند. پس از آن پروانس را تسخیر کردند تا از پو دفاع کنند. تا در نهایت بریتانیا را تسخیر کردند برای آنها 400 سال طول کشید تا از روم به لندن برسند در سال 350 قبل از میلاد هیچ رومی تصور نمی کرد که مستقیمن به بریتانیا کشتیرانی کند و آنجا را فتح کند گاهی یک حکمران بلند پرواز یا ماجراجو یک لشکرکشی در دور دست ها بپامی کرد اما چنین سفرهای معمولا در مسیرهای امپراتوری یا تجاری شناخته شده ای جریان می‌افت. برای مثال لشکرکشی های الکساندر کبیر منجر به استقرار امپراتوری جدیدی نشد بلکه برای قصب امپراتوری موجود پارسیان صورت گرفت. نزدیکترین امپراتوری‌های پیشین به امپراتوری‌های نوین اروپایی، امپراتوری دریایی کوهن آتن و کارتاژ و امپراتوری دریایی قرون وستایی ماجاپاهیت بود که در قرن چهاردهم بر بخش‌های زیادی از اندونزی حکومت می‌کرد. اما حتی این امپراتوری ها به ندرت اقدام به ماجراجویی در دریاهای ناشناخته می کردند و در مقایسه با تهاجمات جهانگستر اروپاییان نوین حملات دریاییشان در ابعاد محلی بود. بسیاری از محققین بر این اقیدند که سفرهای دریا سالار ژنگه از سلسله چینی مینگ به شارت دهنده بر سفرهای اکتشافی اروپاییان بوده. بین سالهای 1405 و 1433، ژنگ رهبری هفت ناوگان دریایی بزرگ را از چین به نقاط دوردست اقیانوس هند به عهده داشت. بزرگترین این ها شامل 300 کشتی و تقریباً هزار ملوان بود. آنها به اندونزی، سریلانکا، هند، خلیج فارس، دریای احمر و شرق آفریقا سفر کردند. کشتی‌های چینی در جده، بندرگاه اصلی حجاز و مالندی در ساحل کنیان لنگر انداختند. ناوگان کلم در سال 1492 که شامل سه کشتی کوچک و 120 ملوان بود، در مقایسه با ناوگان جنگ همچون پشه‌ای در مقابل اجدها بود. اما میان این دو یک تفاوت اساسی وجود داشت. ژنگ ه اقیانوس‌ها را در می‌نوردید و به حاکمان چینی خدمت می‌کرد. اما سعی نمی کرد سرزمین هایی را که به دانها سفر می کرد تسخیر یا مستعمره کند. علاوه بر این سفرهای جنگه چندان در سیاست و فرهنگ چین ریشه نداشت. وقتی فرقه حاکم در پکن دهه دههی 1430 تغییر کرد، اربابان جدید ناگهان به این عملیات خاتمه دادند. نافگان بزرگ برچیده شد اطلاعات تکنیکی و جغرافیایی از بین رفتند و از آن به بعد سفری در آن ابعاد از بندرهای چینی انجام نشد. حاکمان چینی در صده های بعدی همچون بسیاری از حاکمان چینی در صده های پیشین تمایل خود را منحصر به نواهی مجاور قلم روی مرکزی کردند. سفرهای جنگ همه نشان دادند که اروپا از موقعیت تکنولوژیک ممتازی برخوردار نبود. آنچه که اروپاییان را می کرد، تمایل بینظیر و سیر نشدنیشان به کشف و تسخیر بود. رومیان اگرچه احتمال تسخیر هند یا اسکاندیناوی را داشتند، اما هرگز تلاشی برای این کار نکردند. پارسیان هرگز تلاشی برای فتح ماداگاسکار یا اسپانیا نکردند و چینیها هیچگاه تلاشی برای تسخیر اندونزی یا آفریقا نکردند. اکثر حاکمان چینی حتی ژاپن همسایه را به حال خود گذاشتند و این غیرعادی نبود چیزی که غیر عادی بود این بود که اروپاییان آغاز اصر را تبی پرا گرفت که آنها را وادار به کشتیرانی به دور ها و سرزمین های کاملا ناشناس آکنده از فرهنگ های بیگانه می کرد تا پس از قدم گذاشتن بر سواحلشان ناگهان اعلام کنند تمام این سرزمین ها به شاه من تعلق دارد. حمله موجودات فضایی در حوالی 1517 مستعمره نشینان اسپانیایی در جزایر کارائیب شایعاتی درباره یک امپراتوری قدرتمند در مرکز مکزیک شنیدند تنها چهار سال بعد پایتخت آزتک به یک ویرانه سوخته بدل شد و امپراتوری آزتک به تاریخ پیوست و هرنان کورتز فرمانروای یک امپراتوری گسترده جدید اسپانیایی در مکزیک شد اسپانیایی ها مکسی نکردند تا به خود تبریک بگویند یا حتی نفسی تازه کنند. آنها بیدرنگ در همه جا دست به عملیات اکتشاف و تسخیر زدند. حاکمان قبلی آمریکای مرکزی، آستک تولتکها و مایه ها تقریبا از وجود آمریکای جنوبی اطلاع داشتند و تایی دو هزار سال هیچ تلاشی برای تسلد آن نکردند. اما ظرف کمی بیشتر از ده سال از سلطه اسپانیا بر مکزیک، فرانسیسکو پیزارو امپراتوری این کار را در آمریکای جنوبی کشف کرد و آن را در سال 1532 در هم شکست. اگر ها و اینکاها با علاقه بیشتری به دنیای اطراف خود مینگریستند و از رفتار اسپانیاییها با همسایگانشان اطلاع پیدا میکردند شاید مقاومت جدیتر و موفقتری در برابر تجاوز اسپانیاییها از خود نشان میدادند تایه سالهای بین سفر اول کلمب به آمریکا، یعنی 1492 و رسیدن کورتس به مکزیک یعنی 1519 اسپانیایی ها اکثر جزایر کارایی را تسخیر کردند و زنجیره از مستعمرات جدید برپا کردند. این مستعمرات برای بومی تحت سلطه جهنمی بر روی زمین بود. استعمارگران طماع و بی با مشتی آهنین بر آنها حکومت میکردند و آنها را به بردگی میکشاندند و در معادن و مزارع به بیگاری وامی داشتند و هر کسی را که کمترین مقاومتی از خود نشان میداد میکشند. اکثر جمعیت بومی در مدت زمان کوتاهی مردند یا به دلیل شرایط کاری شاق و یا مبتلا شدن به بیماری های موثری که از کشتیهای اشغالگران به آمریکا منتقل میشد. تقریبا تمام بومی‌های کارائیب طی بیست سال از بین رفتند. استعمارگران اسپانیایی برای پر کردن خلأ ایجاد شده، شروع به وارد کردن بردگان آفریقایی کردند. این قتل عام در آستانه دروازه های امپراتوری آستک رخ داد. اما وقتی کورتز پا به سواحل شرقی این امپراتوری گذاشت، آستکها هیچ اطلاعی از آن نداشتند. آمدن اسپانیایی‌ها به یک حمله از طرف موجوداتی فضایی شباهت داشت. آستیک ها معتقد بودند که از همه دنیا باخبرند و خودشان بر بخش‌های وسیع آن حکومت می‌کنند. برای آنها غیرقابل تصور بود که در بیرون از قلمرو خودشان موجوداتی شبیه به این اسپانیایی‌ها وجود داشته باشد. وقتی کورتز و مردان او قدم به سواحل آفتابی ویراکروز امروزی گذاشتند، اولین باری بود که آستکها با مردمی کاملا ناشناخته روبرو شدند. آستکا نمی دانستند چه اکسولعملی باید نشان دهند و نمی توانستند که این بیگانگان که هستند. این موجودات بیگانه برخلاف همه انسانهایی که می پوستی روشن و صورتهایی بسیار پرمو داشتند، شدیدن هم بوی بد می دادند. در آن زمان بهداشت بومی بسیار پیشرفته از بهداشت اسپانیایی بود. وقتی اسپانیایی برای اولین بار به مکزیک رسیدند، بومی ها با نوعی مشعل بخور آنها را به هر کجا که می مشایعت می ها این را نشان احترام خداگونه به آنها فرض می کردند. اما ما اکنون با اتکاب منابع بومی می‌دانیم که دلیلش این بود که نمی توانستند بوی بد تازه واردین را تحمل کنند. فرهنگ مادی بیگانگان از این هم گیج کننده تر بود آنها در کشری های گولپیکر ظاهر شدند که آستکا هرگز نمی توانستند تصورش را بکنند چه برسد به اینکه آن را دیده باشند آنها بر پشت حیوانات عظیم الجثه و خوفناکی سوار می شدند که با سرعت باد حرکت می کردند آنها می از یک میله فلزی درخشان رد و برق تولید کنند آنها شمشیرهای بلند براق و ذره‌های نفوذناپذیری داشتند که شمشیرهای چوبی و نیزه‌های چخماقی بومیان بر آنها کارایی نداشت. بعضی از آستکاها گمان می‌کردند که آنها خدایان هستند. بعضی دیگر معتقد بودند که آنها شیاطین یا ارواح مردگان یا جادوگرانی قدرتمندند. آستکها به جای اینکه تمام نیروی خود را بر بیرون راندن ها متمرکز کنند، تعمق و کاهلی و مذاکره را در پیش گرفتند و دلیلی برای حمله ندیدند. از نظر آنها کورتز فقط 550 اسپانیایی با خود آورده بود. یک گروه 550 نفره با یک امپراتوری چندین میلیونی چه کار میتوانست بکند؟ در مقابل کورتز هم شناختی از آستکها نداشت. اما او و مردانش امتیازات چشمگیری بر طرف مقابل داشتند. در حالی که آستکا هیچ تجربه برای رویارویی با چنین بیگانگان عجیب و بدبویی نداشتند، اسپانیایی ها میدونستند که زمین پوشیده است از قلمروهای انسانی ناشناخته و هیچکس به اندازه خود آنها در تسخیر سرزمین های بیگانه و دست و پنجه نرم کردن با شرایط کاملا ناشناخته مهارت نداشت. دست و پنجه نرم کردن با ناشاناخته برای اشغالگران جدید اروپایی همچون برای دانشمندان نوین اروپایی هی انگیز بود. بنابراین وقتی کورتز در ژئه 1519 بر آن ساحل آفتابی لنگر انداخت بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد دست بکار شد. مثل موجود فضایی فیلم های علمی تخیلی که از سفینهش خارج می شود رو به بومیان وحشت زده اعلام کرد، ما به دنبال صلحیم ما را پیش رهبرتان ببرید کورتز توضیح داد که فرستاده ای صلحجو از طرف شاهنشاه کبیر اسپانیاست و خواهان یک مساهبه دیپلماتیک با منتزومای دوم حاکم آستک شد این یک دروغ بغیانه بود کورتز رهبر یک گروه مستقل متشکل از یک مشت ماجراجوی هریس بود شاه اسپانیا هرگز چیزی به کورتز و آستکها نشنیده بود کورتز از دشمنان بومی آستکها چند راهنما غذا و مقداری کمکهای نظامی دریافت کرده بود او سپس به طرف پایتخت آستک شهر بزرگ تنوچتیتیلیان به راه افتاد آستکها به بیگانگان اجازه دادند تمام راه را تا پایتخت بروند و امپراتوری مونتزوما رهبر بیگانگان را با احترام به حضور پذیرفت در حین گفتگو، کورتز به مردان مسلح خود، مجهز به شمشیرهای فولادی علامت داد و اینها محافظین منتزما را که تنها به چماقهای چوبی و چاقوهایی با تیزه های سنگی مجهز بودند، سلاخی کردند. میهمان محترم میزبان خود را گرگان گرفت. کورتز اکنون در یک شرایط بسیار حساس قرار داشت. او امپراتور را به اسارت گرفته بود اما در محاصره دهها هزار جنگجوی خشمگین و میلیونها غیرنظامی خشمگین و در برابر قاره کاملی بود که عملاً هیچ چیز درباره اش نمی‌دانست. او فقط چند صد نفر اسپانیایی در اختیار داشت و نزدیک‌ترین استحکامات اسپانیایی در کوبا بود که بیش از 1500 کیلومتر دورتر از آنجا بود. کورتز مونتزومای را در قصر در اسارت نگه داشت و چنین وانمود کرد که شاه آزاد است و همچنان در قدرت. او همچنین چنین وانمود کرد که سفیر اسپانیایی در آنجا فقط میهمان است. نظام حکومتی امپراتوری آستک به شدت متمرکز بود و این موقعیت کاملا ویژه آن را فلج کرد. مونتزوما طوری رفتار کرد که گویا کماکان بر امپراتوری حکومت می کند و بزرگان آستک هم کماکان از او اطاعت می کند. که این به معنای اطاعت از کورتز بود. این مزید چندین ماه به طول انجامید و در این مدت کورتز از مونتزوما و همراهان او بازجویی و کسب اطلاعات می کرد. مترجمینی را به چندین زبان محلی آموزش داد و هیئت‌های کوچکی از اسپانیایی‌ها را به همه جا فرستاد تا با امپراتوری آستک، قبایل مختلف و شهرهایی که در احاطه داشت آشنا شوند. سرانجام بزرگان آستگ علیه کورتز و مونتزوما شوریدند. امپراتوری جدیدی برگزیدند و اسپانیایی‌ها را از پایتخت بیرون راندند. اما اکنون شکاف‌های بسیاری در ساختار امپراتوری ایجاد شده بود. کورتز از اطلاعاتی که جمعآوری کرده بود استفاده کرد تا این شکاف ها را بیشتر کند و در امپراتوری از درون تفرقه بیاندازد. او بسیاری از توده های تحت حکومت آستک را متقاعد کرد تا بر علیه طبقه حاکم آستک به او ملحق شوند. توده های تحت حاکمیت در محاسبه دچار اشتباه بدی شدند. آنها از آستک متنفر بودند، اما چیزی درباره اسپانیا یا قتل آم کارائیب آنها گما می کردند که با کمک اسپانیایی ها می توانند از یوغ آستک رهایی یابند، اما این امکان که در عوض زیر یوغ اسپانیایی ها بروند، هرگز به ذهنشان خطور نکرد. آنها مطمئن بودند که اگر کورتز و مردانش مشکلی ایجاد کنند، به سادگی منکوب می شوند. توده های شورشی کورتز را مجهز به ارتشی مرکب از ده‌ها هزار محلی کردند و کورتز به کمک این ارتش پایتخت را محاصره و تسخیر کرد. در این مرحله سربازان اسپانیایی و مهاجرین بیشتر و بیشتری به مکزیک آمدند، گروهی از کوبا و دیگران مستقیم از اسپانیا. وقتی توده های محلی متوجه شدند که چه اتفاقی در شرف وقوع است، دیگر خیلی دیر شده بود. یک قرن پس از پیاده شدن در وراکروز 90 درصد از جمعیت بومی آمریکا عمدتا به دلیل بیماری‌های ای که اشغالگران با خود به آمریکا آورده بودند از بین رفتند. ده سال بعد از رسیدن کورتز به مکزیک، پیزارو پا به ساحل امپراتوری اینکا گذاشت. او سربازان بسیار کمتری از کورتز در اختیار داشت، دقیقاً 168 نفر. اما از تمام اطلاعات و تجربیات اشغالهای قبلی مند بود. اینکاها برعکس هیچ چیزی راجب سرنوشت آستکان نمیدانستند. پیزارو از اطلاعات کورتز استفاده کرد و خود را یک فرستاده ی جوی شاه اسپانیا معرفی کرد و حاکم اینکا آتا هوالپا را به یک گفتگوی دیپلماتیک دعوت کرد و سپس او را به اصارت گرفت. پیزارو امپراتوری فلت شده را با کمک متحدین محلی تسخیر کرد. اگر توده تحت حاکمیت امپراتوری اینکا از سرنوشت ساکنین مکزیک خبر داشتند، هرگز سرنوشت خود را به دست اشغالگران نمیانداختند. اما آنها چیزی در این باره نمی دانستند. اقوام بومی آمریکا تنها کسانی نبودند که بهای گذافی را با بت نظری خود پرداختند. امپراتوری های بزرگ آسیایی مثل امپراتوری عثمانی، صفوی، موقل و چین خیلی زود مطلع شدند که اروپایی ها چیز بزرگی را کشف کردند اما علاقه کمی به این اکتشافات نشان دادند. آنها کماکان بر این باور بودند که جهان به دور آسیا می‌چرخد و در نتیجه برای رقابت با اروپا برای کنترل آمریکا یا راه‌های آبی جدید و های اطلس و آرام هیچ تلاشی نکردند. حتی پادشاهی های کوچک اروپایی مثل اسکاتلند و دانمارک چند هیئت برای اکتشاف و تسخیر به آمریکا فرستادند. اما هیچ هیئتی، نه برای اکتشاف و نه برای تسخیر، از طرف جهان اسلام، هند یا چین به آمریکا فرستاده نشد. اولین قدرت غیر اروپایی که تلاش کرد یک حیعت نظامی به امریکا بفرستد ژاپن بود، و آن مربوط به جوان 1942 که یک هیئت ژاپنی کیسکا و آتو دو جزیره کوچک در خارج از سواحل آلاسکا را تسخیر و ده سرباز آمریکایی و یک سگ را اسیر کرد. ژاپنیها بیش از این به خاک اصنی آمریکا نزدیک نشدند. مشکل به توان دلیل آورد که ها یا چینی در فاصله بسیار دوری قرار داشتند یا فاقد امکانات تکنولوژیک، اقتصادی یا نظامی بودند. منابع مالی که ژنگ ها در دهه 1420 از چین به شرق آفریقا فرستاد میتوانست برای رسیدن به آمریکا کافی باشد فقط میتوان گفت که چینی ها علاقه ای به این کار نداشتند اولین نقشه جهان نمای چینی که آمریکا را در بر می تا قبل از سال 1602 ترسیم نشد و تازه آن را هم یک مروج دینی اروپایی ترسیم کرد اوروپایان طی 300 سال ارباب بلا منازه خود بر آمریکا و اقیانوسیه یعنی سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بودند تنها کشمکش های قابل توجه در آن مناطق میان قدرت‌های گوناگون اروپایی صورت می‌گرفت ثروت و منابع جمعآوری شده اروپاییان به تدریج آنها را قادر ساخت تا آسیا را هم مورد تاخت و تاز قرار دهند، امپراتوری هایش را مغلوب سازند و آن را میان خود تقسیم کنند. وقتی عثمانیها، ها، ایرانی ها، هندی ها و چینی ها به خود آمدند، دیگر خیلی دیر شده بود، تنها در قرن بیستم بود که فرهنگ های غیر اروپایی بینشی به راستی جهان نگران اتخاذ کردند. این یکی از عوامل مهمی بود که منجر به فروپاشی اقتدار اروپا شد. در جنگ آزادی بخش الجزایر که بین سالهای 1954 تا 1962 در جریان بود، چرک های الجزایری ارتش فرانسوی را علا برتری عددی و تکنولوژیک، شکست دادند الجزائری ها به این دلیل پیروز شدند که از طرف یک شبکه ضد استعماری جهانی حمایت می شدند و می دانستند که چطور مطبوعات جهانی و افکار عمومی خود فرانسه را در راستای اهداف خود بسیج کنند شکستی که کشور کوچک ویتنام شمالی بر قول آمریکا وارد کرد بر استراتژی مشابهی استوار بود این نیروهای چریکی نشان دادند که اگر مبارزه محلی، ابعادی جهانی پیدا کند، حتی عبرقدرت ها را هم می به زانو درآورد. جالب است به این فکر کنیم که اگر مونتزوما رهبر آستک ها می توانست افکار عمومی اسپانیا را تحت تاثیر قرار دهد و از یکی از رقبای اسپانیا مثل پرتغال، فرانسه یا امپراتوری عثمانی کمک بگیرد چه میشد انکبوتهای کمیاب و خطوط فراموش شده انگیزه علم نوین و امپراتوریهای نوین ناشی از این احساس بیقراری بود که شاید چیز مهمی در آن سوی افق وجود دارد که در انتظار کشف و تسخیر است اما رابطه میان علم و امپراتوری بسیار عمیق تر از این بود نه فقط انگیزه های برپاکنندگان امپراتوری ها و دانشمندان، بلکه عملکردهایشان هم در هم تنیده شده بود. برای اروپایی های نوین، ساختن امپراتوری پروژه علمی بود و تدوین یک بنیان علمی یک پروژه امپراتوری بود. وقتی مسلمانان هند را فتح کردند، نه باستان را به خود آوردند تا به طور روشمند تاریخ هند را بررسی کنند نه مردم را که فرهنگ های هند را مطالعه کنند و نه زمین که خاک هند را تجزیه و تحلیل کنند و نه جانور که راجب به جانداران هند تحقیق کنند وقتی بریتانیایی ها هند را فتح کردند همه این کارها را انجام دادند در دهه آوریل 1802 نقشه برداری گسترده هند آغاز شد و تا شست سال ادامه یافت. انگلیسی ها با کمک دهها هزار کارگر بومی محقق و راهنما از کل هند به دقت نقشه برداری کردند، مرزها را مشخص کردند، فاصله ها را محاسبه کردند و حتی برای اولین بار ارتفاع قله اورست و دیگر قله های هیمالیا را دقیقاً اندازه گیری کردند. انگلیسی‌ها راجب منابع نظامی استانهای هند و جای معادن طلا تحقیق کردند اما این زحمت را هم بر خود هموار کردند تا راجب های هند هم اطلاعات گردآوری کنند و پروانه‌های رنگارنگ را به دقت دسته‌بندی کنند و ریشه‌های زبان زبان‌های منقرض شده هندی را ردیابی کنند و ویرانه‌های فراموش شده را از زیر خاک بیرون بکشند مهنج و دارو یکی از شهرهای اصلی تمدن در سند بود که در هزاره سوم قبل از میلاد رونق گرفت و در حوالی 1900 قبل از میلاد تخریب شد قبل از حاکمان هیچ هیچیک از حاکمان قبلی، نه مورایاها، نه گپتاها، نه سلطانهای دهلی یا مغلهای کبیر به این ویرانه ها نظری نیافکنده بودند اما یک بررسی باستانشناسی توسط انگلیسی ها در سال 1922 به این نما توجه نشان داد. سپس یک گروه انگلیسی شروع به حفاری آن کرد و اولین تمدن بزرگ هند را که هیچ هندی اطلاعی از آن نداشت کشف کرد. یک مثال گویای دیگر از کنجکاوی علمی انگلیسی کشف و خواندن خط میخی بود، این خط به مدت سه هزار سال خط اصلی مورد استفاده در سراسر خاور میانه بود. اما آخرین فردی که میتوانست آن را بخواند احتمالا زمانی در اوایل هزاره اول میلادی مرده بود. پس از آن ساکنین منطقه به نوشتارهای میخی، بر بناهای تاریخی، ستونهای سنگی، ویرانهای کوهن و ظروف شکسته برخورد کردند، اما نمی از آن خراشهای گوشدار عجیب سر در بیاورند و تا جایی که میدانیم هیچ تلاشی هم در این راه نکردند. خط میخی در سال 1618 توجه اروپایی‌ها را به خود جلب کرد و آن زمانی بود که سفیر اسپانیا در ایران برای تماشای ویرانه‌های باستانی تخت جمشید رفته بود و با کتیبه‌هایی روبرو شد که هیچ کس نمی‌توانست معنای آن را برای او بازگو کند خبر وجود یک خط ناشناخته در میان فرهیختگان اروپایی شیوی یافت و کنجکاویشان را برانگیخت در سال 1657، محققین اروپایی اولین رونوشت از یک متن میخی در تخت جمشید را منتشر کردند. بعد از آن رونوشت های دیگری انتشار یافت و نزدیک به دو صده محققین غربی سعی کردند معنی آن را کشف کنند، اما کسی موفق نشد. در دهه 1830 یک افسر انگلیسی به نام هنری راولینسون به ایران فرستاده شد تا به شاه در آموزش ارتش به سبک اروپایی کمک کند. راولینسون در اوقات فراغتش به نقاط مختلف ایران سفر می کرد و روزی راهنمایان محلی او را به صخره عظیمی در کوههای زاگرس بردند و سنگ نوشته بزرگ بیستون را به او نشان دادند. که ارتفاعش در حدود 15 متر و ارزش 25 متر بود. در قسمت بالای بیستون فرمان شاه داریوش اول مربوط به سال 500 قبل از میلاد حک شده بود. این متن به خط میخی به سه زبان نوشته شده بود: فارسی کهن، ایلامی و بابیلونی این نوشته برای جمعیت محلی شناخته شده بود اما کسی نمیتوانست آن را بخواند. راولینسون مطمئن بود که اگر به تواند معمای خواندن آن خط را کشف کند، او و محققین دیگر را قادر خواهد کرد تا نوشتارها و متون بیشماری را که تا آن زمان در تمام خاورمیانه کشف شده بودند بخوانند و به این ترتیب دری به یک دنیای کوهن و فراموش شده گشوده خواهد شد. اولین گام در رمزگشایی این علایم تهیه رونوشت دقیقی بود که بتواند به تواند به اروپا فرستاده شود. راولینسون برای این کار مرگ را به جان خرید و سراشیبی سخره را پیمود تا از آن حروف عجیب نسخه برداری کند. او چندین بومی را به کمک گرفت. در میان آنها پسر کردی بود که از غیرقابل دسترس ترین قسمت های صخره صعود میکرد تا از بخش بالایی نوشتارها رونویسی کند. در سال هزارهش این پروژه به انجام رسید و یک نسخه دقیق و کامل به اروپا ارسال شد رابلینسون به این دستاورد کفایت نکرد هرچند به عنوان یک افسر ارتش های نظامی و سیاسی به عهده داشت اما به محض اینکه فراغت مییافت به آن نوشتارهای مرموز خیره میشد او روش های مختلف را یکی بعد از دیگری می آزمود تا بالاخره موفق شد تا قسمت مربوط به زبان فارسی باستان را رمز گشایی کند. این ساده‌ترین بخش بود زیرا فارسی باستان فرق چندانی با فارسی کنونی نداشت که راولینسون آن را به خوبی می‌دانست. فهم بخش فارسی باستان کلید لازم برای گشودن رموز بخش های ایلامی و بابلی را هم به او داد. دروازه بزرگ بر پاشن چرخید و ازدهامی از نداهای کوهن اما زنده به بیرون هجوم آورد. هیاهوی بازارهای سومری، بیانیه‌های شاهان آشوری، مجادلات دیوانسالاران بابلی. بدون تلاش های, های نوین اروپایی مثل راولینسون، ما نمی توانستیم چیز زیادی درباره سرنوشت امپراتوری کوهن خاورمیانه بدانیم. دیگر محقق برجسته امپریالیست ویلیام جونز بود. جونز در سال 1783 به هند رفت تا به عنوان قاضی در دادگاه عالی بنگال خدمت کند. او چنان شیفته عجایب هند شد که در کمتر از شش ماه پس از برودش انجمن آسیایی را بنیان کرد. این مؤسسه ای آکادمیک به مطالعه فرهنگ‌ها و تاریخ ملت‌ها و جوامع آسیایی به ویژه هند اختصاص داده شده بود. جونز دو سال بعد اولین مشاهدات خود را درباره زبان سانسکریت، زبان باستانی هند که زبان مقدس آیین هندو هم بود، منتشر کرد که راهگشای دانش مقایسه‌ای زبانشناسی شد. جونز در نوشته های خود به شباهدهای های میان سانسکریت و زبان های یونانی و لاتین و نیز تشابهاتی میان همه این زبان ها با زبان های گوتیک، سلتی، فارسی باستان، آلمانی، فرانسه و انگلیسی اشاره کرد. واژه مادر در انگلیسی mother، در سانسکریت matar، در لاتین mater و در سلتی کوهن ماتیر است. جونز گمان میکرد که تمامی این زبان باید یک ریشه مشترک داشته باشند و از دنیای کوهن فراموش شده تکامل یافته باشند. او اولین کسی بود که را که بعدها خانواده زبان های هندو اروپایی نام گرفت شناسایی کرد. مطالعات جونز نه فقط به دلیل فرضیه جسورانه و صحیحش بلکه به دلیل ایجاد یک روششناسی منظم برای مقایسه زبانها نقطه عطف مهمی بود. این روششناسی توسط محققین دیگر پذیرفته شد و آنها را قادر کرد که به طور روشمند به مطالعه تکامل تمام زبانهای دنیا بپردازند. علم شناسی مشتاقانه با حمایت امپراتوری روبرو شد. امپراتوریهای اروپایی معتقد بودند که برای اعمال حاکمیت موثر باید زبان و فرهنگ های, توده های تحت سلطه خود را بشناسند. افسران انگلیسی بعد از ورود به هند تا سه سال در دانشکده کلکته به مطالعه علوم زیر می پرداختند. قوانین هندو و اسلام در کنار قوانین انگلیسی، زبان های سانسکریت، اردو و فارسی در کنار یونانی و لاتین، فرهنگ تامیلی بنگالی و هندوستانی در کنار ریاضیات اقتصاد و جغرافی آموزش زبانشناسی کمکهای بسیار ارزندهای به درک ساختار و دستور زبانهای محلی میکرد به پاس اقدامات افرادی مثل ویلیام جونز و هنری راولینسون اشغالگران اروپایی های خود را به خوبی میشناختند بسیار بهتر از هر اشغالگری در گذشته و حتی بهتر از خود جمعیت بومی آن مناطق. دانش برتر آنها امتیازات عملی آشکاری به دست داد. بدون چنین دانشی نامحتمل مینمود که شمار قلیل انگلیسی بتوانند در حکومت بر صدها میلیون هندی و سرکوب و استثمار آنها تی دو قرن موفقیتی داشته باشند. در سراسر قرن 19 و اوایل قرن 20، کمتر از پنج هزار افسر انگلیسی، در حدود چهل هزار تا هفتاد هزار سرباز انگلیسی و شاید صد هزار بازرگان انگلیسی و همراهان، همسران و فرزندانشان توانستند بر 300 میلیون هندی تسلط و اعمال ها کمیت کنند. اما فقط این امتیازات علمی نبود که باعث می شد تحقیقات زبانشناسی، گیاهشناسی، جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند. اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوریها حقانیت ایدئولوژیک برمقان آورد، کمتر از آن امتیازات نبود. اروپاییان نوین به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که ها به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می‌پردازند آنها را عاملان پیشرفت و اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخ علومی مثل جغرافیا، باستانشناسی و گیاهشناسی حداقل به طور غیر مستقیم موجب کسب اعتبار امپراتوری های اروپایی می‌شود. تاریخ گیاهشناسی چیز زیادی درباره رنج بومیان استرالیایی نمیگوید اما معمولاً از جیمز کوک و جوزف بانکس با کلامی گرم یاد می کنند. علاوه بر این، دانش جدیدی که توسط امپراتوریها فراهم آمد، حداقل به طور نظری امکان بهرهوری توده‌های تحت سلطه را از امتیازات پیشرفت مثل خدمات درمانی و آموزشی، شبکه‌ای راه آهن و آبراها، امنیت حقوقی و رفاه به وجود آورد. امپریالیست ها مدعی بودند که امپراتوری هایشان نه اقدامات گسترده استثماری بلکه پروژه های نوع دوستانه به نفع نژادهای غیر اروپایی بوده است. البته واقعیت این اسطوره را باطل می کند. انگلیسی ها بنگال را که ثروتمندترین ایالت هند است در سال 1764 تسخیر کردند. حاکمان جدید دقدقه ای به جز پر کردن کیسه های خود نداشتند. آنها سیاست اقتصادی فاجعه‌باری اتخاذ کردند که بنگال را به کام یک قحطی بزرگ کشید این در سال 1769 شروع شد و در سال 1770 به مرز فاجعه رسید و تا سال 1773 به دراز و انجامید قریب 10 میلیون بنگالی یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت در این فاجعه مردند حقیقت این است که نه روایت سرکوب و استثمار و نه روایت تعهد مرد سفید هیچ کدام به طور کامل با واقعیت هماهنگ نیستند. امپراتوری های اروپایی کارهای متفاوت بسیاری در چنان ابعاد گستردهی انجام دادند که هر کسی می تواند در هر جهت دلخواهی مثالهای فراوانی بیاورد. آیا شما فکر می‌کنید که این امپراتوری‌ها نیروهای اهریمنی شروری بودند که با خود مرگ، سرکوب و بی‌عدالتی برای جهانیان به همراه وردند؟ در این صورت شما می‌توانید دانشنامه کاملی از جنایات آنها بنویسید. آیا می‌خواهید نشان دهید که آنها در واقع شرایط توده‌های تحت حاکمیت خود را با دارو و درمان جدید، شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر بهبود بخشیدند؟ می یک دانشنامه کامل دیگر از دستاورت های آنها هم بنویسید. این امپراتوری ها به اعتبار همکاری نزدیکشان با علم دارای چنان قدرتی بودند و دنیا را در چنان ابعاد عظیمی تغییر دادند که شاید نتوان به سادگی یک برچسب خوب یا بد به آنها زد. آنها دنیایی را که ما در برابر خود داریم به وجود آوردند و ایدئولوژی هایی را خلق کردند که ما از آنها برای قضاوت اعمالشان استفاده می کنیم. اما امپریالیست ها از علم برای اهداف شیطانی تری هم استفاده کردند. زیستشناسان، مردم شناسان و حتی زبانشناسان شواهدی علمی به دست دادند که بر اساس آن اروپاییان برتر از تمام نژادهای دیگر هستند و در نتیجه حق حاکمیت بر آنها را دارند. پس از آنکه ویلیام جونز نشان داد که تمام زبانهای هندو اروپایی از یک زبان کوهن واحد مشتق می شوند، بسیاری از محققین مشتاق بودند بدانند چه کسانی از آن زبانها استفاده کردند. آنها پی بردند که قدیمی ترین استفاده کنندگان سانسکریت که بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی به هند حجوم بردند خود را آریا می نامیدند. سخنبران اولیه زبان فارسی خود را آیریا می خاندند. در نتیجه محققین اروپایی حد زدند که استفاده کنندگان آن زبان اولیه که ریشه زبانهای سانسکریت و فارسی و نیز یونانی، لاتین، گوتیک و سلتی بوده، قاعدتاً خود را آریایی می‌نامیدند. آیا اتفاقی بوده که بنیانگزاران تمدنهای با شکوه هندی، پارسی، یونانی و رومی همه آریایی بودند؟ در قدم بعدی محققین انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نظریه زبانشناسی درباره آریایی‌های کوشا را با نظریه انتخاب طبیعی داروین آمیختند و چنین فرض کردند که آریایی‌ها تنها یک گروه زبانی نیستند، بلکه موجودیتی زیستی، یعنی یک نژاد هستند. و نه هر نژادی بلکه یک نژاد برتر بلندقامت با موهای روشن، چشمان آبی، کوشا و به منطقی که از سرزمین‌های مهالود شمال سربراورد تا بنیاد فرهنگ در سراسر جهان را بنا اما متاسفانه، آریایی که هند و پارس را اشخال کردند، با بومیان این سرزمینها آمیزش کردند و روشنی پوست و موی خود و همراه با آن منطق و های خود را هم از دست دادند. به این ترتیب تمدن های هند و پارس رو به زوال گذاشت. از طرف دیگر، آریایی در اروپا خلوص نژادی خود را حفظ کردند. به این دلیل بود که اروپاییان توانستند بر جهان حکومت کنند و برای این فرمان روایی مناسب هستند. البته به این شرط که از آمیزش با نجاتهای دیگر بپرهیزند. چنین نظریات نجات ای که تی دهه های طولانی، چیرگی و احترام خود را حفظ کردند، اکنون توسط دانشمندان و سیاستمداران مداران زیر سؤال رفته. مردم کماکان قهرمانانه با نجات پرستی مبارزه می‌کنند بدون اینکه متوجه شوند که جبهه نبرد تغییر کرده و جایگاه نژادپرستی در ایدئولوژی امپراتوری اکنون با فرهنگ‌گرایی عوض شده چنین واجهی وجود ندارد اما اکنون جا دارد که آن را ابدا کنیم در میان حاکمان امروزی ادعاهایی وجود دارند مبنی بر اینکه قابلیت‌های متضاد گروه‌های مختلف انسانی تقریبا همیشه در تفاوت‌های تاریخی میان فرهنگ‌ها نهفته است نه در تفاوت‌های شناختی میان نژادها دیگر گفته نمی‌شود در خونشان است بلکه می‌گویند در فرهنگشان است بنابراین احزاب اروپا که با مهاجرت مسلمانان مخالفت می‌کنند معمولا از واژه شناسی نژادی فاصله می‌گیرند. نویسندگان نوت‌های مارین لوپن راستگرا می‌توانستند در جا انگشت نما شوند اگر رهبر جبهه ملی در تلویزیون ظاهر می‌شد و می‌گفت ما نمی‌خواهیم که سامی‌های پست خون آریایی ما را آلوده کنند و تمدن آریایی ما را تباه کنند. به جای این جپه ملی فرانسه حزب آزادی هلند اتحاد برای آینده اتریش و احزاب مشابه میگویند که فرهنگ غرب آنطور که در اروپا شکل گرفت با ارزشهای دموکراتیک خود بردباری و برابری جنسیتی هویت مییابد حال آنکه فرهنگ مسلمانان که در خاورمیانه شکل گرفته با سیاست سلسله مراتبی تعصب و کوتح نظری و زنستیزی مشخص می‌شود از آنجا که این دو فرهنگ بسیار با هم متفاوت است و از آنجا که بسیاری از مهاجرین مسلمان به پذیرش ارزش‌های غربی بی‌علاقه و شاید ناتوان هستند نباید پذیرفته شوند تا مبادا باعث برانگیختن درگیری‌های داخلی شوند و به دموکراسی و لیبرالیسم اروپایی آسیب بزنند چنین استدلال های فرهنگ گرایانه با آن دسته از مطالعات علمی در علوم انسانی و اجتماعی تقویت می شوند که این به اصطلاح تخاصمات فرهنگی و تفاوت بنیادی میان فرهنگ متفاوت را برجسته می کند. اما همه تاریخدانان و مردم شناسان این نظریات را نمیپذیرند یا از کاربردهای های سیاسیش پشتیبانی نمی کنند. در حالی که برای زیستشناسان امروزه کار آسانی است تا از نجات پرستی فاصله بگیرند و نشان دهند که تفاوت‌های زیستشناختی میان گروه‌های امروزی مردم ناچیزند، فاصله گرفتن از فرهنگگرایی برای تاریخدانان و زیستشناسان دشوارتر خواهد بود. پس اگر تفاوت‌های میان فرهنگ‌های انسانی ناچیزند چرا باید به تاریخدانان و مردمشناسان دستمزد بدهیم تا آنها را مطالعه و بررسی کنند دانشمندان پروژه‌های امپراتوری را به دانش عملی، حقانیت ایدولوژیک و ابزار تکنولوژیک مجهز کردند بدون این مساعدت‌ها توانایی اروپاییان برای تسخیر دنیا زیر سؤال می‌رفت فاتحین هم در ازای آن دانشمندان را از حمایت اطلاعاتی و تأمین اقتصادی بهرمنده مودند و از تمام پروژه های اقوا کننده و عجیب پشتیبانی کردند و روش علمی تفکر را در چهار گوشه دنیا رواج دادند. بدون حمایت امپراتوری هم علم نوین دستاوردهای چندانی به دست نمی آورد. عرصه های علمی محدودی وجود دارند که حیات خود را در لباس خادمین شکوفایی امپراتوری آغاز نکرده‌اند و کشفیات، یافتهها، تجهیزات و هزینه های آموزشی خود را در ابعاد وسیع مدیون کمکهای سخاوتمندانه افسران ارتش، کاپیتان‌های ناوبگان‌ها و حاکمان امپراتوری نبودند. بدیهی است که این تمام ماجرا نیست. علم را نه فقط امپراتوری ها بلکه نهادهای دیگری هم پشتیبانی کرده اند و رشد و شکوفایی امپراتوری های اروپایی هم به عواملی خارج از حیطه ی علم وابسته بوده در پشت شکوفایی خیره کننده ی علم و امپراتوری ها نیروی مهم خاصی نهفته است kapitalism اگر برای سوداگران انگیزه جستجو به دنبال پول و ثروت وجود نداشت، کولومب به امریکا نمی جیمز کوک به استرالیا نمی رفت و نیل آرمسترانگ بر کره ماه گام نمی گذاشت.